کتاب داستان‌ها و افسانه‌های مردم پاکستان نویسنده کومال لکبن مترجم مهداد مهدویان ارائه شده از کانال تلگرامی هزار افسان داستان های افثانه سوتی. به مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده نازنین زهر و صوتی سلام به شنوندگان کانال تلگرامی هزار افسان. امیدوارم که حالتون خوب باشه. قبل از اینکه افسانه های مردم پاکستان رو بهتون تقدیم کنم، پیش پیشاپیش خواهی میکنم چون ممکنه در این داستان بعضی از نام ها اشتباه تلفظ بشه. امیدوارم که من رو تا آخر همراهی کنید. راج بالا یکی بود یکی نبود. در روزگاران قدیم پادشاه قدرتمندی بود اسم تاکور پرتاب سینگ. این شاه توی سرزمین ویشالپور فرمان روایی می و یه دختر زیبا به اسم راج بالا داشت. راج بالا نامزد پسری به اسم آژت سینگ بود. آجت سینگ پسر سود هاراج بود، معروف به آنار سینگ، هوکرمان بود. آنار سینگ سرقت زمینی به حکرمان سین اختلاف داشت و برای همین موضوع با هم دعوا داشتن و بالاخره این اختلاف باعث جنگ وحشتناکی شد و در نتیجه آنارسینگ از حکرمان سین شکست خورد. سربازای دشمن اون رو به عنوان اسیر پیش حکرمان بردن پادشاه برای تنبیه اون رو به نقطه دوری تبعید کرد در نتیجه اون مجبور شد که از شهر و دیارش دور بشه آنارسینگ بیچاره توی یه ده دور خونه کرد و بالاخره توی فقر و بدبختی از دنیا رفت. بعد از مرگ آنر سینگ زن بی کرد تا تنها پسرش یعنی آجد سینگ رو به خوبی تربیت کنه. اون میخواست پسرش رو طوری بار بیاره که احساس حقارت نکنه. ولی درست موقعی که پسرش به سن بلوغ رسید مادر از دنیا رفت. آجد سینگ که تنها مونده بود نامه‌ای برای پادشاه سنت فرستاد و از اون خواست تا اجازه بده به قلم رو به پدرش برگرده. اما پادشاه موافقت نکرد. بعد از اون آجد سینک شکست خورده برای تاکور پراتاب سینک پیغام فرستاد که اقلن به قولش عمل کنه و دخترش راجبالا رو به عقد اون در بیاره. راجبالا که حالا دیگه یه خانوم بسیار زیبا شده بود اغلب پسری فکر می کرد که توی نوزادی با اون نامزد کرده بود. اون شنیده بود که اون نوزاد حالا یه جوان برومند و جذاب شده. وقتی که پیک آجد سینک به ویشالپور پور رسید راجبالا اون رو به قصرش دعوت کرد و به پیک گفت به آژت بگو که من حاضرم با اون ازدواج کنم. تاکور پراتاب سینک که مرد محترمی بود، حاضر بود به قولش عمل کنه. به شرط اینکه آژتسینگ برای عروسی با دخترش نیاقت خودش رو ثابت کنه. تاکورسینگ از آجد خواست تا شیر معادل های هزار روپیه برای دخترش بپردازه. پیک پیش آژتسینگ سینک برگشت و پیغام پادشاه و دخترش رو به اون رسوند. آجد از پیغام دختر خوشحال شد. ولی از پیغام پادشاه در مورد شیربه ها یک کمی ناراحت شد. بناچار پیش مرد پول داره نزول خاری رفت تا پول قرض بگیرد. اون مرد که در گذشته دوست صمیمی پدرش بود با دادن پول به اون موافقت کرد. با این شرط که تا وقتی پول رو پس نداده حق نداره همسرش رو به خونه ببره. آژتسینگ با این شرط موافقت کرد پدر راجبالا که انتظار نداشت آژتسینگ این همه پول رو تهیه کنه متعجب شد اما به دخترش رو به عقد آژت درآورد آژت همسر عقد کردش رو توی خونه پدر تنها گذاشت و به خونه خودش رفت بعضی روزها به اون سر میزد و احوالش رو میپرسید و نزدیک غروب از اونجا میرفت راجبالا از این حرکت شوهرش تعجب کرد. اما چیزی نمی گفت. چند هفته گذشت و بالاخره یه روز راجبالا جرأت کرد و دلیل این کار رو از شوهرش پرسید شاهزاد آژت جواب درستی به اون نداد زن اصرار کرد و آژت مجبور شد که تمام ماجرای مرد نزول و شرط و شروطش رو برای شریک زندگیش بگه و به اون اعتماد کنه راجبالا که از این کار شوهرش و صمیمیت اون تجرب کرده بود گفت عزیزم به خاطر من بهای سنگینی رو پرداختی ولی فکر نمی کنم به این زودی بتونیم پول رو پس بدیم مگه اینکه سخت کار کنیم با این خبر راجبالا خودش رو به صورت یه مرد جوان در آورد و به بقیه گفت که برادر زن آجد سینک هستم و وقتی که شب همه توی قصر به خواب سنگینی رفته بودند، همراه شوهرش سوار عصر شدن و به آرومی قصر رو ترک کردند و به سمت اودایپور رفتن. صبح بود که اونها به دروازهای قصر ماهارانا جگاتینگ که توی اودایپور بود رسیدند. ماهارانا داشت توی ایونهای قصرش قدم میزد که دوتا غریبه جوون رو خارج از دروازه قصر دید. و دستور داد که اونها رو پیشش بیارن. اونها به مهارانا ارزادف کردن و گفتند که دنبال کار می کردن. آجت سینک جوون همراه خودش رو گلاب سینک معرفی کرد. ماهارانا جاگات سینک هم اونها رو استخدام کرد و برای زندگی خونه ای به اونها داد. از این قضیه آجت و بالا خیلی خوشحال شدند. ولی رفته رفته متوجه شدن که با انجام این کار نمیتونن به اندازه کافی پول جمع کنن و بتونن قرضشون رو ادا کنند آخر دست موزده اونها خیلی اینها چیز بود. رانا جاگات از چه کار خوشش میومد؟ حتی یه بار گلاب سینک سینک رو با خودش برای شکار به اعماغ جنگل برد. ناگهان یه شیر سر راه اونها قرار گرفت و و اسب رانا حمله کرد رانا که غافل شده بود ترسید و سلاحش رو انداخت و فرار کرد شیر روی اسب رانا پرید و گلاب که این وز رو دید با سرعت بی نظیری جلو دوید و شیر رو کشت. شیر در جا و با شجاعت گلاب رانا از مرگ حتمی نجات پیدا کرد رانا که از ترس جونش در حال فرار بود ناجی خودش رو درست ندیده بود. موقعی برگشتن از همراههای خودش پرسید چه کسی منو نجات داد. یکی از همراههای شاه برای تملق و چاپلوسی نجات شاه رو به خودش نسبت داد. ولی شاه فریب نخورد و دستور داد که تموم همراههاش از جلوی اون عبور کنند تا بتونن نجات دهندش رو شناسایی کنند. وقتی که گلاب سینگ از جلوی رانا رد شد فوری اون رو شناخت و فریاد کشید ای این همون مرد جوونیه که من رو نجات داده گلاب سینگ با احترام جواب داد قربانه کردم." کسی که ادعا کنه شیر رو کشته همون کسیه که شما دنبالش میکردین. رانا از این جواب گیت شد و آجد سینگ گفت قربانه کردم قاتل شیر گوشها ها و پنجه های شیر رو هم کنده. اونها رو به نشانه پیروزی پیش خودش نگه میداره. رانا میدونست که گلاب سینک برادر زن آجد سینکه. پس دستور داد که هرگز گوش و پنجه شیر رو داره اونها رو براش بیاره. گلاب سینک وارد اتاق شد و اونها رو با احترام جلوی پاهای شاه گذاشت. شاه دستور داد که به اونها ترفی بدن. اون گلاب سینک رو مسئول خوابگاه سربازاش کرد. حالا اگرچه اونها باز هم از هم دیگه شده بودن ولی چاره جز اطاعت نداشتن. ماها گذشت و اون دوتا هنوز پول کافی رو جمع نکرده بودن تا قرضشون رو بپردازند. یه شب گلاب سینگ سر قرارش توی حیات و آجد هم پیش پادشاه بود. شاه دستور داد که آجد برو یک کمی استراحت کنه. و بعد خودش هم با اتاق مخصوص خوابش رفت. گلاب سینک توی حیات قدم میزد و آهنگ غم انگیزی رو زمزمه می کرد. آجد سینک که به طرف اتاقش میرفت ناگهان صدای آواز همسرش رو شنید. آهنگ انقدر غم انگیز بود که اون رو هم تکون داده بود. اون هم از تای قلب و با تمام علاقه با خوندن آوازی سوزناک جواب همسرش رو داد. ملکه رانا که زن عاقلی بود صداها رو شنید. حد زد که این دوتا نگهبان باید زن و شوهر باشن. رانا که از حد سه سر همسرش مطلع شد خندش گرفت و به ملکه گفت که اونها هر دو مرد هستند. ولی ملکه زیر بار نرفت و از رانا خواست تا هر دوی اونها رو پیشش بیارند. پادشاه برای خوشحالی ملکه دنبال اونها فرستاد. اون قضیه شک ملکه رو و هر دوی اونها گفت و از اونها خواست تا حقیقت رو برملا کنن. آجد مدت کوتاهی رو به خودش فکر کرد. بعد تصمیم گرفت که تموم داستان رو برای اون بگه و تقاضای کمک و دل سوزی کنه. رانا که شنیدن داستان این دوتا خیلی غمین شده بود تصمیم گرفت که این دو عاشق رو به هم برسونه صبح روز بعد قرض مرد نزول‌خوار از خزانه قص به آژتسینگ پرداخته شد و اون هم برای پرداخت اون سریعاً به طرف جای رفت حالا دیگه پیرمرد نزول‌خوار موضوع قرض رو از یاد برده بود اخه مدت زمان زیادی از اون ماجرا می‌گذشت در هر حال بعد از گرفتن پولش بی نهایت خوشحال شد بعد آژتسینگ به سمت اودایپور برگشت تا به شاه ارزه احترام کنه رانا با محبت اون رو پذیرفت و دستور داد تا مقدمات رسیدن اون دوتا تا عاشق رو فراهم کنن بعد هم لقب پیر این شاک رو به اون داد حتی امروز هم راج رو با همین اسم توی اودایپور می‌شناسن کانال تلگرامی هزار, هزار داستان داستانهای افثانه ای صوتی Japanti. نشانی کانال تلگرامی t.me slash مهران دوستی t.me نقط m-e-h نشانی وبلاگ ما M کانال تلگرامی هزار افسان به مدیریت محمد جواد بوستانی